حکایت، وقتی در سفر حجاز طایفه جوانان صاحب دل همدم من بودند و همقدم، وقتها زمزمهی بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و آبدی در سبیل منکر حال دربیشان بود و بیخبر از درد ایشان، تا برسیدیم به خیر بنی هلال. کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی برآورد که مرق هوا حوال در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقصندر آمد و عابد را بیانداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد و تو را همچنان تفاوت نمی کند. دانی چه گفت مرا؟ آن بلبل سهری، تو خود چه آدمیی که از بی خبری، اشتر به شعر عرب در حالت است و ترب، تو نیست کج کشتب جانوری و انده حبوب به ناشرات علالهما، تمیل و قسون و البانه للهجر به ذکرش هر چه بینی در خروش است، دلی داند در این معنی که گوش است، نبلبل بر گلش تسبیح خانی است، کرخاری به تسبیحش زبانی است.